بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد مواله طاهرین فلسف مطره و هم در این مصول مطره بنابراین دو تا اصطلاح اصطلاح فلسفی دبارت است از علم بسیط غیر مرکر در این کشف تفصیلی که در اسفار که ده هشتوم صفه دیویست و چلو سه اینطوری تعریف میکنم علم بسیط غیرمرکب در عین کشف تفسیر مثل علم باری, باری تعالی به ممکنات قبل از خلقت نها و در حین خلقت و بعد از خلقت معلم جمالی فلسفی تأمین هر از این تمصیریه حاوی به و میشن از این قبل این ها قبل از خرته مون خدا عالم بوده یا نبوده چرا زمانی نه زمانیه ده ممکنات زمانین ممکنات زمانی ده زمان از عوالث زمان و زمان قبل از خلقت ینها بوده یا نبوده میشه علم جمالی علم جمالی منبع که تمام تفاصیل و علوم تفسیری از اون نشرف می بیید علم که فیه کل تفاصیل و این علم اجماری همه ای تفاصیل ازا قویته از علوم تفسیری بعده و در اصفار داره که هو اشتفا و من یعنی این علم اجماری اشتف از قروم تفسیری این علم از نظر مصطلع فلسفی 48 همه از فار صفحه دیگه 48 مراجعه کنید و کتاب هایی دیگه مثل علمظاهر و الهانیر باز خود ملاسب در انجام داره و دیگر فلاسفه ولی علم اجمالی اصولی یک علم بشروبه به جهده از یک جهد علم از یک جهت جهد حساب میشید لذا علم اجمالی اصولی از آغاز علم تفسیری علم تفسیری به ادالت قوی تر از, از علم اجمالی به ادالت و امسانیه. و یک تعبیر دیگری هم شیخ اشتاق داره نسبت به علم اجمالی فلسفی در تصویر علم واجب متعادی قبل از ایجاد که خیلی متاخلی تا به این تفسیر از محفظه توسی مثل ارن و شهر بزوری در کتاب معروفش و همه اینها رو مرموم آمولی در هاشیه منظومه که در افر صفحه 494 این در دولار رو پواهی آورده مراجعه کنیم رضی نیست صفحه 494 که در فرمی شیخ محمد طریق آمولی صاحب مصباح نودا این شرق قروبت مصر اونم یه تفسیر دیگه داره که منصوب به شیخ و تابعین زیادی این یک مطلب در رابطه با تفریق بین علم اجمالی فلسفی با علم اجمالی اصولی حالا علم اجمالی اصولی از تنبیهات خودشیت قطعه بنابراین که قطعه داشته باشه و لزوم مطابق از نظر که از نظر اوپلایی براش باشه آیا بین علم تفسیری و علم اجمالی فرق هست یکی از مطالبی که هست اینه که آیا بحث خبرمیه یا صبرمیه یعنی بحث ما در خودشیت علم اجمالیه یا نه بحث صبرمیه ظاهر کلمات من جمله خود مصنف اینه که بحث کبرمیه این بحث ما در بودیت علمش مانیه ولی به نظر میرسه که بحث صغرمی باشه به این معنا که مراتب تکریف و چهار چهارتاست آخرین مرتبه که مترتب بر مرافت قبل مرتبه تنجز و تنجز مشروط به علم و وصول تنجز که چهارمین مرتبه از مراتب و حکمه مشروط به علم و وصول حالا بحث در علم اجمالی اینه که آیا علم اجمالی وصول حساب میشه یا نمیشه این شرط تنجز هست یا نیست زیاده بحث سغرمی میشه به بحث در وضعیت علم اجمالی نداریم اگر علم اجمالی اصول حساب بشه تکلیف بایی ما میشه بر کردن و اگر وصول نباشه تکلیف منجز نمیشه و قبلا گفتیم که مباحثی که سه باشه مرتبط به مباحث تشخیص موضوعات و همه شبهات سغرویه جزء شبهات موضوعیه حساب میشه وقتی شبه موضوعیه باشه احکام شبهات حکمیه در اونها راه نداره و یک نتیجه نهایی و فوری که میشه ازش بگیریم اینه که ادله برائت در اطراف لمجمالی جاری نمیشه چون ادله برائت مال شبهات حکمیه است علالظاهر و مفروض اینه که شبهه در موارد مجادی این شو شبهه موضوعی و حالا حالا که در تقدیر بحثایی که مصنف مطرح کرده در دو مقام. ما همیشه نسبت به احکام دو مقام رو داریم. نسبت به هر حکم یکی مقام ذبوت اون حکم و یکی مقام سقوط اون. تعبیرات مصنف اضطراب داره و تعبیرات اصطلاحی حساب نمیشه هم باید اینطوری بگم که مباحث علم اجمالی در دو مقام مطرحه یکی مقام ثبوط تكلیف و یکی مقام سقوط تلیف آیا این مجموعی تکلیف ثابت میشه بر ذمه انسان یا تکلیف ثابت نمیشه بعد از اینکه قائل شدیم این به اینکه قائل مجموعی تکلیف ثابت میشه حالا چطور ثابت میشیم تکلیف یعنی کیفیت اسقاط این تکلیفی که بر اومده پس همه ها حول همین دو حکم ثبوت و ثبوت یکی مقام ثبوت تکلیف با علم اجماری یکی هم مقام سقوط تکلیف با علم اجماری در علم تفسیری هم همین هم اطلاعه. یعنی با علم تفسیری احنام بر ما ثابت میشه ولی چطور باید اثقاتش کنیم آنم براهی داری یکی استیانه یکی اطاعته و چهار تا راه برای اسقاط تکلیف از ذمه هست که اینها رو در حفظه دوبوم شبیصت را برده یه سقوط رو به یکی از این چهار هم که دردن هم گفته بود همون مواردی که در علم تفسیر مزرحه در این مجمالی هم مزرحه آیا با این مجمالی تکلیف ثابت میشه؟ یا تکلیف ثابت نمیشه؟ یک مقاید دومی که آیا در مواردی که ثابت میشه سقوطش به چیه؟ آیا تنها راه سقوطش احتیاطه؟ که علیه مشهور یا نه احتیاط لازم نیست که ما علیه علم و, و این دقیق نظریه در این باب حساب میشید بهذا معلوم که محقق قومی صاحب قوانی صاحب قناع مدعیان و سایر کتابهایی که داره امتن از صاحب نظریهاته قاعد شده به که که این فیلیت در موارد احتیاط نیست فتهایان و ثر داره که چرا نظریه محقق امی امتنه و قویتر از سایر نظریات مشهو اینطوری مطرح میکنم که وقتی با علم اجمالی تکلیف بر ذمه انسان ثابت میشه خلاف الامه مجلسی در کتاب اربعینش که قایل شده به اینکه تکلیف ثابت نمیشه از نظر علمی و اصولی این طور قائل ولو از نظر فتبایی قائل به اتیاد خیلی افتامه مجلسی در فتبا قائل به اتیاد ولی از نظر علمی و مبنای اصولی قائل به اینه که علم با جهش هیچ فرق ندار بنابراین که قائل بشیم به سبوت تکدیف به علم اجمالی برخلاف نظری یه علامه مجلسی حالا نحوه اثقاتش به چیه؟ اختلف الالا الان قوله مشهور قائل به ایتیاط محقق امی قائل به احتیاط نیست مشفوری که قائل به ایتیاط هم عدل نیدارن میگن نحوه ای در موارد علم و یک امتصال تفصیلی باشه ولو خود علم اجمالیه باید تفصیلی باشه عدم نیداره این عدم در صفحه 173 آوردیم که 6 در دقیقا میکردن برای این در موارد علم اجمالی تکلیف ثابته این در مشروع واقعیت هم همینه من خلاف مجلسی در یک کتاب هم اربعینش وقتی کی ثابته چطور امتصال کنیم قائل به احتیاط یعنی قائل به عدم کفایت امتثال اجمالی است یعنی قائل به قول میذای قوم نیستند، است میذای قوم قائل به امتثال اجمالی و امتثال اجمالی میگه کافیه پس اون میگه کافی نیست شش دلیل و این نظریه عدم کفایت امتثال اجمالی دارد؟ حالا با قطع نظر از تفریق بین توسلیات و تعبودیات. من من و مجموع در تحبودیات این ششتا دلیل آوردن بلوم این ادله در توسلیات راه نداره حالا طبعا دلیلی این اینها رو بیگن و این هم نیست در توسلیات مثل عقود و اقباد ما باید با کدوم سیق عقد نکاح رو جاری کنیم بیاییم بگم نه همه رو بخون همه بعد بخون هم تو هم هم کرد و بعد با, با متعددی بشه با من متعددی بشه بدون این ها متعددی بشه آخرش هم فارسی آیا میشه احتیاط کرد یا نمیشه احتیاط کرد؟ اعلام از محققین قاعده بینن که نمیشه قاعد معلوم باشه عقد نکاح با کدوم میشه بعد اون رو قصد کنیم برا اجرای عقد بقیه تیاتن میاد نه اینکه ما نمیدونیم کدوم میشه منحیصد مجموعی رو میخونیم یکیش میشه دیگه اینطوری نیست. نیست قاعدم به اینکه در عقد نکاه این رو نمیشه نیاز به جزم داره نه قصد غربه که بگی این شبه اقتصاص به یاد داره جزم دلیلیت کدومشه که در توسلیات هم هست ازام نهیزان مجموعی شبهاتی هست شبهات اثباتی که در فقه مطرحه و بعضی از اون شبهات دامنگیر توسلیات هم هست مثل عبد نکاح با کدومش نگاه رو بخونیم عقد موقت رو با کدومش بکنیم بخونیم اومد تا تو بخونیم یا با زبشت رو یقیناً باید انسان سنجه از داشته باشه درکی به قصد قربت هم نداره. آ کدومش؟ با کدوم قصد؟ باشه. شما همین دیگه شما همین اول کلامه. نمیشه. باید معلوم باشه شما موقت رو متعهد تو با ذنبشتو نمیشه. رو میدونم ببینه آیه قرآن با روایه از اختلاف داره یه مراجعه فهمالی بکنید اختلاف داره آیه قرآن <تصفح> یه لفظ داره روایات الفاظ دیگه داره خواه کدومش میشه نشان موقت عقد دائم خب میگه نکاهه ولی عرض موقت کدوم میشه اختلاف داره شدین اولی کلام میدید شما به عنوان فقیه فرده کدوم میشه میخوایی پرتبابه دید محل بحثش اینجاست شما این شبهه رو وارد میدونی از نظر اصفاتی یا وارد نمی دونی؟ نیاز به یه مقدار تعمال داره تو مباعثا به نتیجه میرسید که آیا جزم وریت لازمه یا نه جزم اینطوری که اینها میگن لازم نیست من و مجموع لازمه و اون من و مجموع حاصل پس در اینه مراجعه کنید به کتاقون میکا عنوان این که ظاهر خیلی از شروعینه که این شبهات اختصاص داره به تعبدیات یا قصد غربت همسانی نه هم. اون یا قصد غربت نمیخواد پس شبه در اونجا نیست لذا مصنف فرموده اما فیما لا یحتاج سقوط و تکیف بیه لا قصد غربته ففی قایت الوزور این بگم نه اینطور هم نیست قایت الوزور بجام نکاح مخصوصا موقعتش معلوم نیست کدومشه مقاید اون سیدهی که وارد شده در مبام اثبات برای ایجاد الگه و مشخص باشه جزم به نیت پس این در قایت بزرگ نیست و همشم منحصره به تکلیف نیست بیاییم بگیم سقوط تکلیفی هداغسته و خیلیش وضعه مثل همین باب نکار یا باب تحلیل یا مکاتبه یا وقت و امثال اینا پس قایت ما نداریم شبهاتی که در تعبدیات مطلحه امثال همون شبهات در توسطیات مطلحه بلکه تر از اون جزم به نیگه از بست قربته چون این وضعیه اون تکریفیه لذا شبه در توسطیات هم هست با همه اینها مشهور یعنی مجموعات تا معاصلی قائل به اینکه انتصال امتصال کافی امتصال به اینکه که امتصال اجمالی کافی نیست برخلاف محقه گومی یعنی حتی معاصلین هم برخلاق میزای گومی به احتیاط و جوه احتیاط به زرن شما در بکنید اگه قائل به قول میزای گومی بشین حالا مشهوری که قائلا به این شش تا دلیل داره. دلیلشون نوع اختصاص به تعهدیات داره، اعتباری به توسلیات نداره. بنابراین شبهه در توسلیات مشهور مشهورش جواب نمیدن. دلیل اولشون اعتبار قصد قربت در عبادات هین هی عمل. نه اینکه ما 24 تا نماز بخونیم بعدش علم حاصل کنیم به اینکه این که حتماً یکیش اون واجبه بر ذمه بوده. نه هین عمل باید معلوم باشه که میشه. و در موارد احتیاط این امر محرز چون این شخص قصد کرده به اینکه با این چهار تا نماز با این صد تا نماز ذمه خودش رو بریمون این یک دلیل دلیل دومش اجماع دلیل سومش قواعد اشتغال و یا یمنی یستدی البراءة الیمنی و مشغول ذمه به این نماز هستیم. اشتغال ذمه مستوی براعت یقینیه است براءت یقینیه جز با احتیاط حاصل نمیشه بنابراین هم باید ظهر رو بخونیم هم جمعه دلیل چهارم اعتبار قصد وجه در عبادات قصد وجه باید بشه و این نمیشه مگر با احتیاط یعني باید معلوم باشه این عبادت به عنوان واجه مستحب مکروب و مبار قدومشه انجام بینیم وزیر عبادت محبوب بشید و از سیره و سایره دیگه که هست شاید در کتاب بیشتر از این آمامهاری تا که ما اینجا نوشتیم من این حیثت مجموع این ها که به این عدله دارن تمثل که به این ادله دارن برای اینکه که اثبات کنن عدم کفایت انتصال اجمالی و از ظاهر بعضی ازش ادله معلومه که نه تنها در این بره مدعا نیست بلکه که بر خلاف مدعا شده رو یعنی اینها میخوان بگم، امتصال اجمالی کافی نیست ادله‌ای که میارن اینو اثبات نمی کنن. حالا تفصیلش در متن میاد در من مرموانی خوندن بطلبی که خود مصنف داره در مبدی رو و دعوان اندال علم به بکاون معتیه به مقدربن معتبرون هین از عمل یعنی هین از اتیانه ولا یک فیال علم بعده او به محصل ادعا که در اطاعت حقیقیه معتبره که انبعا سعب برای عمل به واجبات و عبادات از امر مولا باشه در این عمل یعنی در این عمل باشه این رو به خاطر اون عملی که از مولا بهش رسیده داره اتیان میکنه و این معنا در موارد امتصال اجمالی محقق محققیست در موارد امتصال اجمالی محقق نیست و خواهد وقتی عبد همه اطراف اجمالی رو در انجام میده این منبعث از عمل مولا نیست بلکه که از احتمال عمل مولاست احتمال این هست که به همه اطراف اجمالی عملی تعلق گرفته باشه. لذا در موارد امتصال اجمالی یعنی در موارد امتیاد این معنی محقق نمیشه با که باید در مواردی که انسان عبادتی رو داره از جان بیده هین معلوم باشه که این من باعث از امر مولاست نمون باعث از احتمال امر این ادعا میگه ممنوعه کی گفته اطاعت حتما باید مستنبده به امر معلوم باشه امر احتمالی هم کافی همین که داره نمازها رو می کنه تا نماز رو به چهار طرف منبعث از امر احتمالیه می خودش اطاعت لازم نیست؟ بگیم اطاعت منحصره به اینکه که منبعث از امر معلوم باشه نه امر احتمالی هم که در چهار طرف احتمال امر هست بنابراین اطاعت سر رو می به ادعای مقالفین ممنوعتون از لا شاهده لها یعنی شاهدی و این انسانی بعض تحق و به اطاعت گرفن به قیلی رزالکه ایزن گرفن به چهار طرف هم نماز می کنن اطاعت دیگه کی میتونه بگیه نه اینا مرسیت کنید این چهار تا نمازی که شما به چهار طرف کنید اینا نه کنید ولی که به یک طرف می کنن اون اطاعت نمیشه ببین. فیجوز و لمن تمک همه من تحصیل علم تفسیلی به فرص قبلر به عدا العبادات من تحصیل العلم التفصیلی به عدا العبادات یا جوز لهو الامل احتیاط کنه و ترک تحصیل العلم التفصیلی لیکن از ظاهر سماه و المحکی و, و البعض اتفاق ادا عدم جواز اکتفاق به احتیاط ازا توقف علا تکدار روگاده گفتن احتیاط در موالی مستردم تکدار روگاده باشه جایز نیست احتیاط باعث توشی ما صد تا نماز رو بخن این بازی حساب میشه تا اطاعت اجای یه دونه نماز صد تا نماز میخواهد یکی از نمازهای ماه قبلش باطله ما بیایم بگیم همه نمازهای ماه قبل رو اعاده کن نمیشینام لعبه به عمر است ازا باهیدن به عدم جواز اکتفاق به احتیاط ازا توقف را تکزاره بگاهدن حالا دایین اینه حالا خیلی خوبه چون که بر این دلیل دید قبول ندارم. چون لب قصدیه دیگه قصدینه تا نه بازی کسی داره از اول شب تا صبح داره نماز میکنه کجاش لحبه ولی آقا میگن دیگه چکا کار کنه گرفتاری گرفتاری یک اصطلاحی واقعا؟ این حرف چیه این همه زوائد و هشهیات کلمات چیه القدید رو از اول تا آخر بخونی یک کلمه هشت پیدا میکنه. ولی کلمات اینها پره هر دلیل یه میکنه. میکنن هر حرفی رو میزنن ماها که دیگه مجسمه این دیگه باید همین ها رو تکرار کنیم گفتن ما کسی یعنی بخواد بگید نه اینا آجیزه میگنم نه این خروج از دیگه سیره اعلامه یاد ها بگیدیم نه با خیلی هفتاد هشتاد درصد ها در دل یعنی طلبه مبتدی میدونه این دلیل نیست حالا چرا اعلام متمسده به میشن نه و ما خیلی از موارد میگویم به ابن حضم در المحلاش یاد میگیریم چون این عدل به چی ادله عدل خیلی مزخرف و مصطب مستب... مصطحجن و مبتزن ولی ما خودمون هم داریم هشفیات زیاد داریم بیا نا با اگر بخواد تکرار این لعبه کجاش لعبه چه باش به لعب, لعب. داره ولی حالا اومده تو کلمات هم میاد تو که کفایی هم اومده در خود کفایی همه هست ثبوت و اتفاق عدم جواز اتفاق خیلی از مطالب میمونه عمر انسان کافی نیست مشغول چیزهایی میشین که مجبوریم، مجبوریم اینا رو بخونیم و اگر یک لوجنهی بود یه چیزی تحمیل ما میدادن ما اون رو میخوندیم قواید که ذهنها با این فراستی که داره رشد میکرد های الان مال هجدار سال قبل که نیست رو ما بیان بخونیم کسی هم بگه میگن آقا نه این دوای ایرات بگیري تقدیس بیش از حد کلمات الام و خودشون بزرگترین مانع پیشرفته بود که به ادله مناقشه نکن هر چی گفتن بگو وقت طلبه سی سال از طلبه یا بیس سال میگذره نه یک دور حدیث خونده نه اصول کافی خونده نه محاسن برقی خونده نه تاریخ خونده نه رجال خونده نه انصاب خونده هیچ چیانا که مفیده نخونده چیزایی که به درست نمیخوره هی خونده مکرده در مکرده بعدا هم که قصد اقامه اشلین سنواد در مسجد اعظم میکنن نیش سالم در خارج برن که باز چیزی حاصل بشه با اینکه هیچ حاصل نمیشه. نه در اینجا ما دلیل نشیم خودشون با هم تعارض دارند. درکن ظاهر ثبوت و اتفاق باز یک حرفی رو محقق زده که بابا مواجب نیست انتیاز برای چه احتیاط کنید. میگن نه اشتغال یمنی یک البراءت البراعت میگه تازه این هم باشه؟ اما این دلیل عقلیه ادله عقلیه جز احکام امن حساب میشه اونی که در تنبیه قبل خوندیم جز احکام تعلیقیه حساب میشه نهایتش ثابت هم باشه یک که امن تمام احکام عقلیه معلق بر اینکه شار شاره و خلافش نگفته باشه اشتغال یقینی یه تدیهت برای تدیه یقینی اگه ابراع زمه تا به اشتغال زمه هست در کیفیتش هم باید باشه کیفیت اشتغال چطوره کیفیت ابراع زمه باید همونطور باشه اشتغال ما اجمالیه اشتغال اجمالی باشه و برایت تفصیلی باشه این کجاش قایل است ولی خب یه قاعده ما به یاد طلبها دادیم از اول تاقف از اشتغال و یقینی یستد یقینی. احتیاط واضح میکنن با همین قاعده با اینکه این قاعده بیاساسه در موارد علم اجمالی اشتغال اجمالیه اشتغال اجمالی از یا الاجمالیه. عطل اما حرف میزای قومی میشه خیلی پخده تر از حرف مشهوره مشهور نمی در همه موارد مین یعنی شبه محصول است و بحثهای خوب اصولی هم براش پیش مییارن مین هرف یسا میدرست درست نیست. همه هما هرف مشهور که اون از این تره پس در موارد علم اجمالی اشتغال اجمالی اگر بنا باشه ابراع ذمه به اشتغال ذمه باشه که هست اشتغال اجمالی براعت اجمالی میخواد ما به عهده ما این داریم همون عهده ما قابل چرا دوتاش ما به دو جامعه ها جامعه اشتغال جامعه, جامعه قابل انتصال نیشه جامعه قابل انتصال چرا تو تاش چرا ما که میتونیم تونیم با چرا احتیاط به کنیم نه عهد و ما واجبه هر چیه ببین هر چیه، هر, چیه، هر چیه فرق است بین موارد علم اجمالی با موارد متفصل اگه شما بدونه این لباس نجسه خب معلومه بحث نداره ولی مفروض اینه که دو تا لباس با هم مشتبه هی. در این موارد اشتغال اجمالی اشتغال اجمالی برای اجمالیه چرا این کارش کنیم؟ چرا احتیاط رو کنیم؟ احتیاط که فتوا نیست ما در هر مورد بیار بگیم بیار بیار احتیاط کن احتیاط کن به چهار طرف نماز بخونم برای چی بکنم نهایتش دو تا میخواد چرا چهار مگه نمیگن 180 درجه قبل از تا بر مگه دوایاتش تو وسایل نیست اگه نهایتش خیلی خیلی بخونم محتاط باشید تا نماز میخواد چرا چهار تا؟ دلیل نداره. ولی میگن شاد وقت کردشون زد رو دوزو می نرمیم ما مبانی رو بخوایم یاد بگیم مبانی مختلفه. یک نفرم فبیه بزرگی مثل میرزای قمی میاد میگه نه کسی قبول نمیکنه؟ با واقعا صاحب قوانین در فقهش تا الان بین خواهی شده بعدن موجود به احتیاط چرا؟ به این تقریدی که ما گفتیم اشتبال اجمالیه براءت اجمالی میخواد ما اگه میدونیسه کدوم لباس نجسه خب حکمش معلوم الان نمیدونیم وقتی نمیدونیم اشتبال اجمالیه چون اهد و مانعیت داره اهد و نجسه خب اهد و چیز میشه چرا هر دو؟ بعد احتیاط که بدقانیست احتیاط ابلی در موارد عقلی آیا تقلید اصلا لازمه یا لازم نیست؟ نه لا, لازم نیست این در تمام شبهات محصول ما لازم نیست تقلید کنیم چون عقل ما همینو میگید بگیم بس تقلید نداره دیگه لزومی نداره ما بیاییم بگیم اعلم و و امثالین چون در تمام موارد احتیاط در شبهه محصوله حکم عقلی حکم عقل در همه هست یه تقلید نداره لذا تمام این موارد رو از موارد تقلید باید جدا کنه با که اعلام ملتزم نیست پس لزو می نداره اشتغال اجمالی اشتغال اجمالی برای از شم اجمالیه. و نمیشه انکارش کرد لیکن از ظاهر سبوت اتفاق ازا عدم جواز الانتفاق به ده امتیاد ازا توقع خدا تکاره بباده. چرا به خاطر که قصد بستش از بین میره لزوم لعب و اوامر موردان آزم میاند بله ظاهر محکی منرد هلی ابن ادریس در این مسئله تسلات عدم و جواز تکرار اول احتیاط حتی معدم تمک کنه منرد علم یعنی ابن ایدری نماز در دو لباس مشتبه گفته احتیاط جایز نیست حتی ما عدم تمکن من علم تفسیلی و اینکا نماز که من همونت تعمیم ممنوعه یعنی تعمیم در عدم جواز احتیاط ممنوعه حالا به اون بحثی که داره منحیز المجموع اخلاف این اعلام هست بعضی مثل ابن افریس هلی اصلا به عدم جواز احتیاط مشهور قایده به وضعه احتیاط هست ایزای هم که به عدم لزوم میشه عدم جواز عدم وجوب جواز حال چه دلیلی دارن برای که احتیاط واجبه یعنی اشتغال یقینی مستدیه برایت یقینی است که در واقع اشتغال میاد خود و خود مصندم هم و مشهور هم ولی این قاعده رو شما قبول دارید این قاعده نهایتش عقلی قواهد ابلیه چقدر میتونن فتا وراث کنن به نظر خود مشهودی هیچ بله مطابق این که نیست. تا اشتغال یگانی نیست. شرایطی که که قبلا براش براعت هنوز حاصل نشده. الان رو حاصل نکرده. با اینکه یگانیه، ماظه اون موضوع اشتغال یگانی باشد و همچنین اون خاصیاتی که برای ادبیات دینیه اشتغال یعنی بوده قاب تا وقتی نیستن حسی که ولو حرف خوبیه چون یکی از مسائلی که ما نوشتیم تو این جزء صفحه در حقیقت یعنی مخالفت تدریجی چون جوایجی مخالفت تدریجی فرمایش شما هم از اجبانا به مخالفت تدریجی یعنی جذب اثر نمیشه ولی تدریج نمیشه این همین مطلب از علامه مویدسی سفیه 168 انداری جواز مقالفت الفتحیه تدریجی از نظر علمی باهمن ولو از نظر فتفایی قاعد نیستن خیلی از مبانی موانی مصولی هستنی از نظر فتفا ها قبول نمی کنن فتفاها برای احتیاطه ولو بر از نظر علمی بخوام مناقشه کنم. نسبت به مقام سبوت تکیف این منطقیت علم اجمالی چندین مطلب هست که اختلاقیه که دقیقه در این توضیح متنه یکی از مطالبی که اختلافیه این که آیا بین علم تفسیری و علم اجمالی فرق هست یا نیست مقاربه در مسئله آغازی عراقی آغازی عراقی قائل به که علم اجمالی خود علم با علم تفسیری فرق داره اینا دوتا علم هم ولی این علم و اون علم فرق داره نفس علم فرق داره یکیش مثل آینه صاف میمونه، یکیش مثل آینه ای که خراب شده نشون نمیده. نفس علم میگه فرق داره. اختلاف علم اجمالی با متفصیلی در نفس علمه نه در معلومش. ولی آینی و مشهور قبلا و بعدا میگه نه معلومشون فرق داره. علم همون علمه پس مخالف در مسئله قاضی عروقی که قائل شده به اینکه علم اجمالی مثل چیزی میمونه که ما از دور داریم میبینیم یه شب این که از دور داریم میبینیم، بمواره یا زیگ خود علم یه داره و آثاری برش مطرب این یک مسئله اختلافیه. آیا اصل علم اجمالی و علم تفصیلی داره یا معلومشون فهمونه؟ مسئله دومی اینه که مناسیتی که برای علم اجمالی قائله، مناسیتیه عقلیه که مشهور میگن یا اولاییه منرسیزیتش کدومه مشفور واقعا به منرسیزیت عقلیه منرسیزیت عقلی باشه یعنی همه اطراف رو باید اتیان کرد ولی اگر منرسیزیت اقلاعیه باشه نظریه میگذاره بومی میشه که اشتغال اجمالی براعت اجمالیه میخواد بین این دوتا باید مبانی خودتون اتخاذ کنید. شما قائل میشید به اینکه که منرسیزیت عقلیه یا اقلاعیه یعنی حاکم به این عقل یا اقلاست اگه عقل باشه احتیاط واجب میشه و وقتی احتیاط واجب میشه از موارد فتوای به احتیاطه یعنی اینگاه فتوا دادن ازا دا تقلیدم درش لازم ولی اگر از منرسیزیت اقلایی باشه یه احتیاطی کار نیست فتوای به همون حکم دیگه حالا بین منعجزیت عقلیه یه مشهور با منعجزیت اقلایه کدومش به نظر شما قوی تره کدومش باید باشه عقل مداد که یا اقلا می داته چی میگه؟ با اون هر که آغازی عراقی داده می میگه گه منعجزیت اقلایه میشه که این مجمالی از دور داریم می تشخیص تشخص زید یا عمل یا چیز دیگه این که علم تفسیلی حقیقتش این علم این علم باشه و این علم اجمالی به خواهد باشه یا ماهیتشون هویتشون فرق بعد از حل این دوتا میشه نتیجه گیری کرد که ما قائل بشیم به مجوب احتیاط در موارد علم یا عدم مجوب احتیاط مثل میرزای نه قایل نشده با اینکه مبناشون اینطوریه قایل نیست به خاطر خیلی از نظریاتشون از نظر فقهی مناسب با نیست. مبنا تقریب میکنه حرف میگذار قمی رو ولی فتواه همون فتواه منشون علا آجدت نیاز به این داره که این دو مسئله برای شما حل بشه چون اگر کسی نتیجه بگیره در این بار که این مجموعی منطقیزیتش عقلیه باید همیشه در شباهات محصوره قائل به حجوب احتیاط باشه اگر قائل شد به منطقیزیت و قدائیه قائل به عدم وجوب احتیاط میشه بنابراین علم داری به این که یکی از این ده تا باز از یکی فقط اشتناب واجب به نوح رو میشه اختیار کرد شما علم داری به این که یک نماز باطل یک نماز باید بخن. نه نماز که نمازهای متعدد بخوایی بخونه به این نظریه شما تا فردا بحث کنید فکر کنید یه مقناست دیگه مبنایی که فروعاتی برش مترتبه. یعنی اگر قاعد بشید به اینکه علم اجمالی منتصدیتش عقلیه تمام اون فروعاتی که مطرح شده در عروه تند درمان فروعات و علم اجمالی در کتاب سلات همه اونا رو باید طبق این نظریه جواب بدید ولی اگر قائل به نظریه میزای قومی بشید نه فرق میکن کنند حالا خود میزای قومی با اینجا عقلی میدونه دونه اینجا اومد اینطور لفت بله هست هست اون ما اونجا قائل به اولایی شدیم یه این زمان که داره میگذره مبانی خود تو مشخص باشید و چیت رو چی میدونید الان در منصفیت علم اجمالی قائل به دوتا حکم شدن یکی حرمت مخالفت قطعیه یکی وجوب موافقت قطعیه این دوتا رو مطرح کردن که در علم تفصیلی اینا تلازم داره ولی در علم اجمالی میگن تلازم نداره بخاطی علم هم علم درش از هم جهد درش نسبت به علمش حرمت مخالفت قطیه میاد نسبت به جهلش وجوب موافقت قطیه میاد بعدن بحثی که مطرحه در کتاب مطرح شده اینه که علم اجمالی آیا علت تامه این دوتا حکمه یا مقتضی این دو حکمه کدومش چهار قول در مساله مطرحه بعضیها بایدن به این که علم اجمالی علت تامه هر دو موکمه بعضیها به این که علم اجمالی مقتضی هر دو مکمه. بعضیها ها به این که علم اجمالی علت حرمت مخالفت و مقتضی وجود موافقت و بعضیها بلنگس حالا نسبت به علیت و اقتضاف کدام شو باید بشین دو تو اجمالی یا مختزیه چرا قاعده به ادلیت میشیم چرا قاعده به اختضا میشیم معنای ادلیت چیه یعنی عدم جواز ترخیص ادلیت یعنی عدم جواز ترخیص اختضا یعنی چی؟ یعنی جواز ترخیص مثلی ادلیت یعنی اصلاً جهاز نصلا ترخیص کنیم یکی از ده نماز باطله دهتا رو باید اعاده کنیم ترخیص درش جاهز نیست استلاح یعنی عدم جواز ترخیص اختضای یعنی چی؟ یعنی جواز ترخیص یا به جمله یا به جمله این اصطلاحات رو باید یاد بگیریم یعنی در این مرحله یادگیری این اصطلاحات ما بدونیم مشروع الان چی گفته چی میگم و کتاب که ما علفه کردیم حتما این تهیه کنن مثل این معجم حسولی حتما در مدست باشه حتی کنار رخت خوابتون هم باشه شب که می خواهید خوابید هر چیزی به ذهنتون رسید نگاه کنید که مسئله که علیت چی میگه مسئله که چی میگه علیت یعنی عدم جواز ترخیص و اختزا یعنی جواز ترخیص بعد اونه که قایل به عدم جواز ترخیصن شبیه زباد میشه تعلق و حجم زمان و اونهایی که قاعده به جواز ترخیص میشن شبیه تعلق و حجم به میشه یعنی اینا رو مرتبط بکنه تنها هنری که در این کلاس ها لازمه آموزش مخارت نه مطالب و این مطالب دو خیلی از آقایون بهتر از من میتونن بگن بهتر از من میتونن مطالعه کنم بهتر از من خوندن مهم اینه که یک مهارتی یک قوتی حاصل بشه که شما بتونید نا رو مرتبط کنید تارکودش پیدا بشه مثل فرشی که این پیر زنا می می آخر نقشهها در میاد گنجشکاش در میاد درختش در میاد گنچش در میاد همهچ یعنی بتونید اینا رو مرتبط کنید در در در در مسلک یعنی علیت شبیه تعلق و حکم ذاته مسلک اختصا شبیه تعلق و به معنوناته و قوام فقه به همینه یعنی عناوین رو با زواد شما تشخیص بده اون موقع کیف میکنید از اینکه که بدید و اگر کسی اینها رو سر در نیاره اولا اگه بتونه فتقا بدی من درس اعلام که میرفتن چهار سال، سه سال، اینها گذشت چیزی حاصل نمیشد تا اینکه یک جلسه من درسی آقایی رفتم در اون یک جلسه شاید بندازه پنج 6 سال مطلب یاد گرفت بخواهدی همه فنون رو میدون چون روش فرد می میکن روش این بود که کتاب رو طلبه میخوند استاد ایراد میگیرد و تو همون ایراداتش همه فنون معلوم بود منحکس میشن مراجعه بکنید فکر بکنید یه دفتری برا خودتون تهیه کنید مبانی خودتون رو اول مبنای خودتون بعد مشروع بعد از دی بعد آقای خویی بعد دیگران که کسی بدون مبنا بخواد پیش بره فایده نداره انتگرال تکرار میشه خست کنندن هست ولی اگر باشه در هر مسئلهی شما نظر خودتون رو پیدا کنید این خودش مومده حالا نسبت به این مسائلی که امروز مفضل شد تا فردا مشخص باشه که شما طرفدار کدوم نذاریدید هر جمله طبیعی ام براتون بکنید بنویسید مباحثه کنید و متن کتاب و متن علم الهجماری رو در سایت داره می‌کونیم آقا پیش مباحثه کنند. یعنی تمام این بحث رو تا آخر تنبیه قبل از اینکه کلاس شروع بشه یک بار بخونید مباحثه بکنید بعدا بیاید کلاس که خسته کننده نباشه ولی اگر چشم ما به متن باشه که متن چی گفته چی میخواد بعدن بگه خسته می‌شید یارو رو بخونید پیش پتا کنید تا فرده شمیدیو زهارا تکسی بشه